أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أسأل على الأنبياء الله على جميع الأنبئاء والمرسلين سيما خوت به محمد اللهم أسوال و اهل بیته الاتیبی در انجرین سی مابقیت الله فالغالمین به هم نتبالله و من اعدائه هم نتبرعو الى الله مقدم شما بزرگواران برادران هوزمی به دانشگاهی و عزیزان قرآنی را گرامی می این عید که از بر جسته اسلامی است به پیشگاه ذخیره عالم خود مولود این ایام و عموم علاقمندان و قرآن و اسرت به شما فرهیختگان تهنیت ارز میکنیم قبل از ورود در بحث این دعای نورانی را که سبغی تعلیم هم دارد به عرضتون می‌رسانیم. قبلا هم این دعا تفسیر شد زراره ظاهرن وقتی به امام صادق سلام الله علیه ارز من اگر اثر غیبت را ادراک کرده ام چیست باید چه چی کار کنم حضرت سمود اگر اثر غیبت را ادراک کرده ای این دوارا از یاد نبر اللهم عرفني نفسك فئن لک لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولک اللهم عرفني رسولک فئن لک لم تعرفني رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفني حجتک فین نشه لب تعرفنی حجت هر برد تو که این دعا مسائر کلمات و خطبه ها و نامه های علیه مسلام این نیستن این از غنیترین ترین و قوی ترین و از پیچیدترین ترین و کلمات نورانی اون حضرت است فرمود اگر خواستی در زمان غیبت از هر خطر نجات پیدا کنی، باید بفهمی بین صقیفه و قدیر چه فرقی است. قدیر میگوید امام معصوم خلیفه پیغمبر است و خلیفه و پیغمبر خلیفه خدا است. مسئله نبوت و رسالت امر انتصابی نه انتخابی و امام با انتخاب حل نمی شود با انتصاب از طرف خداست صریف میگوید اینکه امامت انتخابی است اگر عده جمع شوند کسی رو خلیفه کنند و خلیفه می شود بین صقیفه و قدیر بین آسمان و زمین فاصله است و امون زراره چون امام خلیفه پیغمبر است به پیغمبر خلیفه خداست تا ما مستخلف چه مستخلف انه ماست نشناسیم خلیفه رو نمیشناسیم ما از کجا پیغمبر را میشناسیم قبل از اینکه روبوییت خدا را رو بشناسیم، اولوییت خدا را پیغمبر منتخب مردم نیست، خلیفه الله هست. این یک است. خلیفه را بدون شناخت مستقل فاعن نمیشود شناخت دو اصل. لذا حضرت فرمود: بگو اللهم معرفنی نفسک، خدایا خودت را من معرفی کن. من بفهمم الوهیت یعنی چه؟ و اله کیه؟ توحید یعنی چه؟ چرا؟ فینده که لم تعرفني نفسکه لم اعرف رسولت من اگر الله رو نشناسم خلیفت الله رو جوله بشناسم من اگر اون مستخلف که خداست مستخلفان که خداست اگر او را نشناسم جانشیر او را نمیشناسم این دعا مثل دعای الله مشفه مرزای اللہ مغفرلی اللہ مغفرموتانا از اون قبیل دعاها نیست که این دعای درس عمیق علمی میخواد که خدا را ما تا نشناسیم رسالت نمیشناسیم و خدا را هم اونطوری مرحوم کللی رضوان لا تالا علیه در همین جلد اول کافی نقل کرد از امام صادق سلام الله نارد کرد که امیر سلام الله فرمود خدا را تا خدایی را الالوهیت ماهیه و ماهیه تا الوهیت شراخته نشه خدا شراخته میشه اعرف الله به و رسول به رساله اینکه شناسنامه که نیست که نام اون حضرت چه؟ پدر اون حضرت که اینا که خب شلاس است و میشه شناخت. اما الرسالت و ماهیه الوحی و ماهوه الملک ما ماهوه انزال و ما ماهوه اینا یه چیزها کندن میخواه. این مثل قیمه سال کفایی نیست که با یه مقدار درس و بحث هم بشه. تو همین جلد اول اصول کافی فرمود تا الوحیت را نشناسیم الله را نمیشناسیم. تا رسالت را نشناسیم حقیقت وحی را نشناسیم حقیقت فرشته را نشناسیم حقیقت انزال وحی را نشناسیم رسالت چرخدم شه ای ارفالله بله و الرسوله بررساله و اولا الامر را بالعمر معروفه و العدل و الاحساد در این دعای نورانی وجود مبارکه امام صادق به زراره میگه تا ما الله را نشناسیم خلیفه الله را نمشناسیم و تا رسول خدا را رسالت را وحی را نبووت را آورنده وحی را نشداسیم خلیفه رسولان مشاست فرق جوهری غدیر و ثقیفه اینه که ثقیفه میکوید یک جمع بشهن کسی رو بنوان خلیفه معین کنن این منتخب مردم است این نه الله است خلیفت الله, الله دیسته که الله اعلم هیث یجعل رسالته بین قدیر و سقیف آسمان و زمین فرق است اون میگه انتخاب مردمه. هست قدیر میگه انتصاب الله هست برهان امام صادق در کسی سی مستقلف انر نشناس خلیف ها روی که بیمش نسه مستقلف انر با الوهیت باشناف نه باشناس نامه اعرف الله به الله و رسول به رساله شناختن شناسنامی که اسم حضرت چیه؟ کی به دنیا آمده در کوه هرا اینا شناختن رسالت نیست برهان حضرت این از که فرمود در اصل قیبت این دعا را بخوان یعنی بفهم اولا درس بخوان کلمه کلمه یاد بگیر برهان اقامه بکن تا بفهمی چی داری میگی وقتی گفتی اللهم مغرف نفسک می توانی بگویی فینکه لم تعرفنی رفسکه لم معرف رسولت وقتی رسول را با رسالت شرف بر رسولت در رسالت می گوی اللهم معرفنی رسولکه فینکه لم تعرفنی که لم اعرف حجتک اونگاه می توان گفت اللهم معرفنی حجتکه این نکته‌ای امام اما نمیدارم کجا برم خیال بکنن که این آسمان زمین تمام خلقت است و خیال بکنن مرگ آخر راه است و خیال بکنن مرگ پوسیدن است این دین آمده به ما بگوید مرگ از پوس به در آمدن است مرگ آخر خط نیست این آسمان زمین یک گوشه از نظام است. یه روز هم وساطش جمع می شود. یه اومنهت به سوا کتا یه سجل کتب بعد تبدیل می شود به جهان عبد. ما اگر ابدی هستیم باید ره ابدی داشته باشیم. مگر میشه انسان بدون زادراه باشه یک. مگر میشه یه زاد راهی که مال چند قدمیه یه مسافر عبد را تامین کند. نه. این که فهمون و فین خیر از زاد تقوی در تو بارک بغره. شما به اندازه راهتون رهتوش تحییه کنید. راهتون که دو قدمی نیست تا قبر نیست. راهتون ابده یه موجود ابدی خب رهتوش ابد تحییه میکنند. دیگه. چی رو قد بکنه؟ اون چه که نزد ماست عبدی نیست ما اندکم ینفد و اون چه ما اندالله باقی اون میتونه زاد راه باشه برای که ما به حق یه موجود عبدی هستیم این داها بوسیدنی نیست فمود اصل غیبت را اگر خواستی درک بکنی اینه موجود مبارک ولی اصل منسوب از طرف خداست مثل قدیر نه منتخب از مردم مروم کلینی رزیوان و تاله تو همون جلده اول کافی در کتاب حجه و یکی از خدمت گذارنش فرمود که امروز در مرو چه خبر در توست چه خبر توی مهدوی چه خبر ارس کرد ایلا هماشای دارن جلساتی دارن گفتگوی دارن در باره امامت بحث میکنن فرموده چی میگن گو اینا میگن امام کسی است که پیشوا مردم باشه مردم او را انتخاب بکنه به او رأی بدن او بشه امام همون همی این از این قرر روایات باز که مراد کلینی در کتاب الهولجه کافی یعنی هم جلده اول اصول کافی را کند همون به واسه بهس النشم ائدل متراولین عین العقول من هازا اینو چی میگن عین الاقول من هازا عین الاختيار من هازا حد اقل تشبيه اینه امام مثل ستاره آسمانه در دسترس کسی نیست عقل کسی نمیرسه فکر کسی نمیرسه این باید معصوم باشه معصوم به اسمت را غیر از خدا کسی نمیدونه و ها به بحیث و نجم من اید المتنابلین اینال اقول من هازا اینال اختیار من هازا اینا بین قدیر و سقیب فرق نذاشته اینا کجا میرن چی دارن مگه انتخاب امام چی دارن میگن؟ مگه دست کسی به ستاره آسمان میرسه این از غوره روایات ماست تو همین جلده اول اصول کافی آمده اما اینا چی داره میگن؟ این باب جامع درباره حجت اون روز که وجود وارکی حضرت در خراسان داشته داشتن مسئله رسمی این مسئله امامت بود تا بین قدیر و سقیف فرق نگذارند ممکن نیست کسی انتصابی را از انتخابی شده بکند لذا فرمود این رو تو نماز قبل از نماز, بعد از نماز تعقیب نماز این رو در اسر غیبه نفرمود یک بار بخون که نفرمود فقط تو بعد از نماز بخون که اینقدر بخون که این معنا برای تو ملکه بشه تا انسان خدا را نشناسه پیغمبر را نمی تا پیغمبر را نشناسه امام را نمی امام زمان را نمی شناسه عمومت را نمی چون تا مستخلف آن شرافت نشه خلیفه شناخته نمیشه که امیدوارم ان الله همه ما به این معارف بار یابیم این مقدمه بحث ما بود تا برسیم به سخنان نورانی امیری رودبونی سلام الله علیه بحث ما در نهج البلاغه به نامه 64 رسید قبلا هم بازون رسید این نهج البلاغه الا و لا بود با درسی بشه یک در دوسط ترس بشهست تو این احجار برمیقار سیده رضی رزیزان ولی بست قسمت تقسیم کرده خطبه ها هست نام ها هست و کلمات هزار خطبه ها در دوسط هم نامه ها در دو هم کلمات هم در دوسط اون خطبه های که این مقدار نرم ترن اون نامه هایی که نرم ترن اون کلمات که نرم ترن اینا انتخاب بشه در سطح رسائل و مکاسه تدریس، تدریس این تدریس، نهجال بلایی که در مطالعه ای نیست. اون خطبه هایی که امیغ تر هست اونا در سطح دوم برای کفایی و خارج کفایی که اونها را کسانی که کفاییت این را خوندن یا آخرای کفاییشون است و خارج کفایی داره میخونن اونا این قسمت رو درس بخونند. با این وضع میشه انقلابی جامعه میشه انقلابی وقتی انسان مرتب درس میخونه که ظالم نباش با ظالم ستیز کن این درس روزانه باشه و ثابت بکنه روزانه که امام شناخته نمیشه مگر بعد شناخته پیغمبر پیغمبر هم با پیغمبری شناخت. مسئله وحی و نوود اینا با بنای اغلا و فهم عرف و لغت نیست این بحث های عمیق کلامی است خب حضرت فرمود تا شما رسالت را نشناسی رسول نمیشناسی تا اولویت نشی ال نمیشناسی. نجل بلاقه این لالامات با درسی میشه هیچ فایده ای ندارد هرگز جامعه جامعه انقلاببه نمیشه مگر اینکه در حوزه بود دانشو نجل بلاقه تدریس رسمی بشه در نامه ش و چهار وجود دوباره که هست امیر به برخی از نامه هایی که معابیه نوش پاسخ میدن. در این نامه 64 در جواب نامه معابیه مرو فرمود که این نامه از طرف عبدالله امیر المؤمنین علیه ابن عوی طالب علیه السلام به طرف معابیت ابن عوی صفیار است. اما بعد نامه همین است اون که در تمام نهج البلاغه آمده با اون که تو خود نهج البلاغه آمده همینه. گاهی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه خطبه‌های یا نام ها رو تغتی میکنه دی مقدار ذکر میکنه یه مقدار ذکر نمیکنه اینجاست اینجاست که همه نامه آمده حضرت فرمود که اما بعد فانا کننا و انتم علاما ذکرتم دل فرض ماویه تو نویشی ما قبلا با هم بودیم بل قبلا با هم بودیم همه عرب بودیم در مکه زندگی می‌کردیم این درست اما ففرق بیننا و بینکم امس دیروز که اسلام آمد ما صفمون جدا شد مرزامون جدا شد انا آمنا و کفرتم مرزا جدا شد درست ما قبل از اسلام با هم توی شهر زندگی میکردیم هم شهری بودیم اما با آودن اسلام مرزا جا شد و هم تازل یو اجهل این یک این مال اصل اسلام ما تو اسلام رشد کردیم مندیم. شما ای کاش تو کفر میموندید و اسلام نمواردید اما مرتب علیه اسلام توته کردید این نس و فوتنتم هم فتنه دامنگیرتون شد هم شما خودتون فتنه کردید شده بخش اخیر که شما الان ادعای اسلام دارید دیگه کی مسلمان شدید شما تا توانستید جنگ ها را علیه ما تحمیل کردید که ما میگیم در جنگ ها علیه شما چه کسر را کشتی؟ تا شده فتح مکه فتح مکه دودمان عبا مسلمان نشدن مستسلم شدند. یه بیان نورانی از در جایده دیگه دارد که ما اسلمو بل استسلمو یعنی ظاهرا اسلام آوردن باطنن و اون کفرشون موندن و ما اسلم مسلمو کم الا کرهن بعد مکه فتش شد دیگه ما هیچ ای نداشتید به حساب ظاهر اسلام آوردید و بعد انکان انفر اسلام كله لرسول الله عليه و علیه آله آلاف و تهیت و است من بعض که کل جامعه حجاز یدخلون فی دین الله شما هم به اجبار به حسب ظاهر اسلام آوردید وگرنه باطنن مسلمان نشد این جواب بخش اول نامه تو اما گفتی من تلها را کشتم، من زبیر را کشتم، من آیشه را آواره کردم، این عرف رو زدی. و گفتی بین کوف و بسله من منزل گرفتم، از مدینه بیرون آمدم، این چند مطلب را تو نامه نوشتی. تلها را که دیگری کشت، زبیر را که دیگری کشت، ما که آیشه را محترمانه برگردندیم به مدینه. و تو میدونی که اینا کی کشت به بهانه ما یادی تله و زبیر از اولین کسانی بودن که با من بیعت کردن بعد خروج کردن علیه اسلام و اسلمین شمشیر کشیدن تو که داره میدونی وزالک امران غبت عنه فلا علیکه ولل ازروفیه علیک تو که در صحنه نبودی باطلا میدونی کار توتیه کیه در صحنه هم که نبودی مسئولیت ظاهری هم که نداری و اما و زکرت انکه ظاهری فی المهاجرین و انصار در نامه نبشتی که میخوای به دیدار ما بیایی دیدار ما با اصله هست تو چه دیداری با ما داری؟ تا توانستی آدم کشی رانده و زکرت انکه ظاهری فی المهاجرین و انصار و قدم قطعات الهجرة، ماه جریان هجرتی نداریم. تو کهی میخواد هجرت کنی؟ در روز فتح مکه دیگه هجرت تموم شده. کل جزیره الارب را اسلام گرفته دیگه جا برای هجرت نیست. و قدم قطع و یوم اوسر اخوکه برادرت چون چند تا برادر دشماع بیه. یکیش تو همون فتح مکه به اصارت در آمد. فین کان که اجلان فص طرفه اگر شتاب زده قصد دیدار داری یک کمی به رفاه و آسایش خودت فکر بکن که بلکه ان شاء هدایت میشی فین لی ان ازار که فزان که جدیر ان یکون الله انما بعثنی لنغمت من من اگر ببینم حیاتت را باقی نمیذارم تو توانستی آدم کشی توانستی فنه کرد. این غارتگری ها رو مگه تو نه اینداختید. کتابی است مکرر بررز رسید به نام الغاات که الغاات یک قرن قبل از نجل بلاقه نوشته شده. معم سید یر از بخش وسیع از این کتاب شریف نجل بلاقه از اون الغاات نقله بکنه. یه یک یکصد سال قبل از نجل بلاقه نوشته شده. معلف الغاات، از جدش از بعضی اساتیدش نقل کنند خودش که دارون اصرا درش نکرد از بعضی اساتیدش نقل میکنه که اونها می من در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه کودک بودم پدر من مرا برد در مسجد جامع که در خصوه نماز جمعه می خوند و من چون کودک بودم در بین جمعیت برای اینکه مثلا حضرت رو زیارت کنم پدر من عجل سنی علا و قلم دوش من رو دوش خودش رو همین پشت گردنش من رو نشود که من حضرت زیارت کردم. من وقتی حضرت زیارت کردم دیدم که وجود مارک امیر و مومنین تکم میده. به پدرم گفتم که علی ابن ابی طالب از جمعیت که گرما فضای مسجای گرفته احساس گرما میکند که این آستینش تکم میده. پدرم من گفت نه پسر. علی ابن عمی طالب یه دونه پیرهن داره. این رو امروز شسته و آشور نداشت. این پیرهن هنوز تره هست که در بدن حضرت است حضرت این کارو میکنه که پیرهن خوش بشه. این رو معلف الغارات تو کتاب الغارات الغارا که یه قرن قبل سید رضی نوشته شده. اومد که از تعمیر تو خبر میانه مارک بود دیگه کل خبر میانه میشه از یک حاکم که نداشتی خود ایران با همه وسعتی که داشت چند تا بیشتر نداشت از احواز و بسره تا کرمان یه استونداری بود که ابن عباس استدارش بود بخش از آزرباجان یه استانداری دارد مش با اون همه وسعدش استان تلقی شد که دار داشت به راه مالک خب کل خاورمیانه در اختیار هستن بود این علی دی که دوبابی ندارد زین آسمان با همه امکاناتش این علی فروت ما بیشت تا اونجا که ممکن بود این مرزه من حفظ کردم تا اونجا که ممکن بود تو شبیه خون زدی معموران را را های ما را یا مسموم کردی یا مقتول کردی هر مالک که را این ها دادن دیگه برخی از استندارهای مصر را این هم سمد دادن دیگه فرمون من اگه را ببینم فقط در میدان جنگ ببینم من که نمی قوم ببینم که تو برای چی میخوای بیایی نه تو عوض شدنی هستی نه عوض شدی این رو تو بخشای این نامه مرغوم فرمودم که فرمود من اگه را ببینم تو به فکر خودت باش. پس ترفه به فکر خودش باف، چند این تذرنی فکمان قال اخو بانی اسات مستقبلی این رها سيف تذربهم به هاوس من بين اغوارن و جلمودی مالکت رو بینم مسیعی که در هوای گرم انسان به کار يه تون باشه که از باسون سنج میاد حالا نم شهاب زنگاي بزرگ و اندی از سیف و لذی تو توهو به که و که و عبی که فی مقابن واحد همون شمشیری که تو دایی تو برادرت را در جنگ بعد یک روزه همه را رو کشتم همون شمشیر است منه تو در از دور فکر نمی کنی ما اگه می خواهد به همین دیگه جد و برادر و داییت را در جنگ بعد را کی کشت تو چرا لفت نمی چرا الان قارت گری رو انداختی؟ و اندی از سیف الازی اعززتو به جدکه و خالکه و اخیکه پی مقام واحد و انکه و الله ما علم تو لعقل فالقلب المغارب العقل در قران کریف فرمان دید دل هاشون شده افلاییت در بلان قرآن اما علا قلوب اقفال ها قرار من میام قلبت قفل شده حرف تو قلبت تو نمی عقلت عقل بسته شده چیز نمی یا آمد در عقلت قفل کردی تو اینی این میشه سران علیهم انذر تمام لم تنذر الله ابن خب برای چی بیای اینجا ول اولى ان يقال لك انكر سُلَماً التلعه که مطلع سوء علیک لالک تنها حرفی که در روایت تو میشه زد اینه که تو یه نردبان گذاشتی رفتی بالا یه جای دیدی که تو را فرید میدن که تو میتوانی بو دسترسی پیدا کنی این یه تشبیه معقول به محسوس است همون تو یه سلمو نردبانه که دیگه رفتی بالا خیال کردی که میتوانی به حکومت اسلامی دسترسی پیدا کنی؟ لَأَنَّكَ نَشَدْتَ غَيْرِ ظَالَّتِك اولا این گوزفنده مال تو نبود این مثال ها و تشبیه معقوب بده انشاد زاله که میگن تو مسجد مکروهه اینه که یعنی چیزی مالی رو گم کرده یار بذاره که مفهوم چیز رو گم کردن پیدا میکنن این میگن ناشد است، زاله یعنی گم شده فهمود دی که گم شده تو نیست، مغان که گم شده تو نیست، مال تو نبود که تو گم بکنی. اون تو دنبال گم شده میگردی که مال تو نیست. مثل که انسان دنبال گوسفنده بگردد که گم شده اون نیست، گم شده چوپان دیگه است. نشأت غیر زالتک و رأیت غیر صائمتک، صائم اون گوسفندایی است که بیاون چرند دیگه. میخوای چوفانی بکنی اما گوسند مال تو نیست میگه گم شده دارم امامال تو نیست این تشبیه معغور و است از چند جد اون نردبان اون چوپان، اون گوسفند، اون گم شده همه اینا از باب نکات ادبیه. فرمود بین اینکه و طلب عملن لاست من اهله لا فی معدنه نه در اون جاگاه تو حضور داشتی نه در اون فرواتش حضور داشتی. فَمَا که من مِن که حرفت و کارت و دورت و از اسلام حرف میزنی ولی از اسلام دوری و غریب ما تا من اعمام و اخوار حملت همو شقاوه تو هم شبیه همون بستگار تحصیح تو به جنگ کشته شدن دیگر خیرده که نیست چیز عوض که نکردی و تمن الباطل جهود به وسیل وجود مبارک پیغمبر علیه و علیه آله آلاف و ته سرا فسور او مساره اهم همین بستگان و خانواده شما نبودن که علیه پیغمبر صفکشی کردن توی جنگ ها و همشون به حلاکت رسیدن تنها جنگ بعدن نبود که اعضای خانواده شما به حلاکت رسیدن. جنگ های هم همینطور بود دیگه شب تا توانستید علیه ما جنگ فروزی کردید فسور او مساره اهم یعنی این کشتی که می بگن به زمین خورده حیسو علمت لم یدفعو عزیما ولم یمنعو حریما به وقع سیوف ما خلا منها الوغی ولم تو ما شهل هوینا حووینا مؤنس است یعنی کمترین کار و آسانترین کاری شما درباره اسلام نکردید تا توانستید فتنه کردید، جنگ‌آفرودی کردید، کشتید و اسیر گرفتید، این کارش رو فقط اکثر تعفیق قتلت عثمان تو در باری قتل عثمان که سهمی داشتی یاد نره تو در کشتن او زاین بودی. الان پیرهن عثمان رو شما با بهانه کردی. شما در کشتن عثمان دخیل بودید. ما گفتیم خلیفه‌کشی نکنین، هر چیز قانونی دارد. بیاد محاکمه کنی وقد اکثر فی قتلت عثمان که از من قتله عثمان و قاتلان عثمان رو مطالبه بیکنی فتخل فی ما دخل فیه ناز اولا بیعت بکن بیاد جز امت اسلامی بشو بعد هر چی که قانون گفت دیگه ما همه راضی هستیم فتخل فی ما دخل فی هنناس سم حاکم القوم الی این اولین کارت اینه که این نظام را بپذیری بعد ما وارد محکمه بشیم ببینیم که حق با کیه کی قاتل عثمان بود کی تحریک کرد کی باید قتل عثمان را حاکم کنه ثم حاکم القوم الیه و بعد احملک و علی کتاب الله این جواب اون امر است بیا اگر آمدی من تو و قاتلان و مدعیان قصر را طبق قرآن حکم محاکمه می‌کنم و اما تلکت لتی تريدو فئنها خود اتو سمیه انل لبنه فی اول الفصال اما این بازهایی که تو در آوردی مثل اینکه کودکی داری فرید میدی چون سابقا اینطور بود دیگه بعد از شیر میگرفتن این چون با پستان مادر و شیر مادر مانوس بود این لحظه جدائی از شیر را میگن فتام فسال. اینکه تو کتابای فقه میگن لا رزای بعد الفتام یعنی وقتی دوران دو سالگی تمام شد این بچه از شیر درمیاد، اگر بعداً یه زنی این بچه را شیر بده، اون شیر دیگه نشجربت نمیکنه، اون نمیشه مادر رزایی یا خواهر رزایی فلان. لا رزای. بعد فتان گاهی میگن فتان گاهی میگن فسان فرمود این کودکی که میخوان از شیر دارند ای رو بازی میدن که این خیلی به این پستان دل نبندن این حرفای که تو میزنی شبیه بازی کودکانه است با کی داره حرف میزنی؟ هم ثوابه تو معلومه هم لواهای تو معلومه هم غارتگری تو معلومه هم ششکشی تو معلومه هم اون دسیسه خلیفه کشی تو معلومه هم جازدادن این تلحف تو معلومه و ما توانی نمیتوانی فرید بدیم این نامه شستشهار حضرت بود که در جواب نامه معاویه ملون نوشتر پایان نوشت و سلامود اهلی یعنی کسی که شایسته درود باست ما درود می‌فرستیم و سبح والسلام علی بنت به نکرد این اساره تقریبا شرح کوتاهی یا ترجمه کوتاهی از دمشق 64 هزار جلد من مجددا مقدم شورا بزرگواران را گرامی می‌دارم و این عید سعید را به پیشگاه خود اون حضرت و عموم علاقمندان قرآن ادرا تهنیت ارز میکنیم از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم امر فرج اون حضرت را تسجیب فرماید خدایا نظام ما رهبر ما مراجع ما دولت و ملت و منبشت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما خطرات سلفی و تکفیری و داعشی را به استقبار و سهیونیس برگردان روح متحر امام راهل و شهدار را با اولیای الهی محشور فرما مشکلات دولت و ملت و مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوان ها را در سایه لطف امام زمان ببتنی بج حل بفرمام جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت اسمه به تهارت قرار بده خیر دنیا و آخرت به قاطبه علاقمندان اسلامی مخصوصاً به پیروان و غیران و وین عزیزان مرحمت بفرما غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم